kwọli bemune kwanar albamban be همه دنیا رو با تو دوست دارم عزیزم اگه با من باشی همه دنیا رو خط میریزم قلبم تو غب نداره خالی بمونه ولی قلبم نمیتونه خالی از عشقت بمونه بیا برگرد از همه دنیا رو با تو دوست دارم عزیزم اگه با من باشی همه دنیامو قط میلیزم قلبم تا قد نداره بدون